بسم الله بنام خداوند بخشندهی محبانه. تور، صفران کوه و کتاب با کتابی که نوشته شده است. در صفحه گسترده. و سبگان المعمو، با بیت و تقدق و سخت برافروشته، والبحر و دریای مملو و برافروشته. این عذاب رب لواطه که بیگمان عذاب, عذاب, عذاب پربرگاره وقت می شود و چیزی از آن مانی نخواهد بود. يوم تمور السماء در روز ایست که آفمان شدیدا به حرکت در می و تزیر الجبال سیرا و کوها از جا کندو متحرک می شوند پس وای دران روز بر تکسیب الذينهم في خوض يلعبون همن هاك در سخنان باطل و بازی مشغولن ایون یراون الی نار جهنم مدعا درن جو که انهار بدو به جهنم می روانند آذه النار که كنتم بها و به آنها میگویند این همان علتشی که آن را انکار میکتیم. اما چون نه ام انتوم نتوصیون آیا این تهدس یا شما نمیبینی؟ اصلا و او لا تصبرو سواء علیکم. بران بارد شبید و بسوزید میخواهید صبر کنید یا نکنید برای شما سفاوتی نمی کند چرا که تنها به اعمال تن جزا داده می شبید بیگمان فرهیزگاران در میان بازهای بهشت و نعمتهای فرابان جای دارند باکن بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم باکن چی پبرکارشان با, با انها داده شاد و مسلوان با پبرکارشان انها راز عذاب دو سخت نگاه داشته از قلوا و اشربو و انی ان بما كنتم تعملون و آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید گبارا اینها خاطر اعمالی که انجام می دادید على و بحور این در حالی است که بر تخت های در کنار هم می کنند و حکور العین را به همسری آنها در می آفرین. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الفقنا بان ذريتهم وما التناهم من عملهم من شَيْءٍ كل بما كتبه له بان هك ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از ایمان اختیار کردند در بهشت به آنها ملحق می کنیم بس عمل آنها چیزی نمی کاهیم به هر کس در گرو اعمال خیشه و امدلنا هم و لحم مما یشتهون هم از انبای به ها و کشت ها از هر نو تمایل داشته باشند در اختیار آنها می گذاریم یتنازعون فِيهَا كَأْسَلَ لَهُمْ فيها عَلَى تَحْفِيم انها در بهش جامحای پرش شراب طهور را که نبیهودگی در آنه و نگناه اتشکتگر می کیرن و یقوب علیهم غلمان لهم كانهم انهم لؤلؤم مکنون باقی بسته در گرد انها نوجبانان برای خدمت آنان گردش می کنند که همچون مربارید های در صدف و اقبل بعض, بعض در این هنگام رو به یک دیگر از گذشته فعال می نما کند قالو انا اهلنا می ما تر میان خانواده خود ترسان بودیم فمن الله علينا عذاب اما خدا من زار و اما خدابان بر ما مننت و از عذاب کشنده ما را هکد اناکنا من قبل ندعو حقا که از سابق به اون یایش می کردیم بیگمان که اونی نیکوکار و مهربان است. فلکر فما انت ربك ولا مجنون حال که چونی است تذکرده و به لطف پربردارت تو کاهن و مجنون نیست. ان يقولون شاعر ندرب به و آنها او شاعری است که ما انتظار مرگش را میکشیم قلت توقفوا من بگو انتظار بکشید که من هم با شما انتظار میکشم ام تأموهم احلامهم بهذا ام هم قوم آیا عقلهایشان آنها را به این اعمال دستور میدهد یا قوم تقیانگرند ام یقولون تقوله بل لا آنها میگویند قرآن را به خدا استراب بسته ولی آنها ایمان ندارند بل یأتو بحدیث حدیث مثل این كانوا پس اگر راست میگوین سخنی هم مانند آن بیاورند امقولقوم آیا آنها به سبب آفریده شدن یا خود خالق خیشتنند؟ آیا آنها آسمان و زمین را آفریده اند بلکه آنها طالب یقین نیستند ام عندهم خزائی رب که هم المسیطیون آیا خزائین پروازگار رفت آنها یا بر همه چیز عالم سیطره دارن؟ ام لهم سلمون یستمعون بیه فلیأت مستمعون بسلطان مبین آیا نردبانی دارند و با آن اسرار وحشی را می شنوند کسی که از آنها این ادعا را دارد دلیل روشنی بیاورد آیا سهم خدا دختران و سهم شما پسران است آیا تو از آنها مطالبه میکنی در زیر بار گران آن قرار دارند اما الغیب فهم آیا اسرار غیب نصف آن ها بس روی آن می ام می‌ریدون کیدا بل آیا نقشه شیطانی برای یوسف بکشند ولی بدانند خود کافران در دامی این نقشه ها گرفتار می شوند اَمْ لَهُمْ إله غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِفُونَ یا معبود غیر خدا بند دارند منصف خدا از آن که برای او شریف قرار می دهند وَإِنْ يَرَوْ كِسْفًا من السَّمَاءِ سَاقِقَنْ يَقُولُوا تَحَابٌ مَرْبُونَ اگر ببینند قطع سنگ از آسمان سقوط می کند می این عطل متراکم است. فذرهم حتی یناقو یوم همون لذی بیه حال که چنین است آنها را رحا کن تا روز مرگ خود را ملاقب کنند. یوم لا یغنی عنهم کی دوم شیئن ولا روزی که نقشه های آنها سود بهارشان نخواهد داشت باز هیچ سود یاری نمی شدن و این لیلذین ظلم و عذابا دون ذلك ولیکن اکثرهم لا یعلمون با درای ستمگران عذاب قبل زانه برای اکثرشان نمی زانه و اصبر لحکم ربک با اینک بیعوننا و تبیح به حمد ربی که طریق ابلاغ حکم فروازگارت صد و استقامت کن چرا که تو در حفاظت کامل ما قرار داری و انگامی که برمیخیشی فروازگارت را تسبیح و حمد کن و من الليل فتبیح و ادبارا نجوم همچنین به هنگام شب او را تسلیح کن و به هنگام کردن ستارگان به صبح.